هزاران سال است که دین ما را به بازی گرفته است مردان دین در لباس‌های فراخ و حریر آمدند تا دنیای خیش را بسازند و آخرت ما را آباد کنند امروز این دغلکاران به لباسی تازه درآمده‌اند هم رنگ جماعت اند. زهر آنان کشنده است و مقاله کیمیا از آنان می گوید کتاب کیمیا اثر نیما شه برای دسترسی به آثار صورتی نیما شه می توانید از وبسایت جهان آرمانی کانال تلگرام کانال یوتیوب اپل پاتکست اسپاتیفای و دیگر برنامه های پادکست استفاده کنم